این داستان سفرهای بندنگشتی یکی بود یکی نبود. زیر گنبد آبی آسمون خیاتی بود که پسر ریزمیزی داشت و اونو بندنگشتی صدا می کرد. اون با وجود کوچیکی خیلی پردل و جرعت بود. یکی از روزا به پدرش گفت پدر من باید برم دنیا رو ببینم و رزق و روزیم و خودم در بیارم. پدر جواب داد ایرادی نداره پسرم بعد یه سوزن رفوگری برداشت اونو کاملا برق انداخت و سیغل داد و روی نوک اون با موم کلاهک کوچیکی درست کرد و به فرزندش داد و گفت. این سوزن مثل شمشیر توه. اونو همیشه با خودت داشته باش در طول مسافرت به دردت میخوره. بندنگشتی قبل از اینکه مسافرتشو شروع کنه فکر کرد که بره و چیزی بخوره. داخل آشپزخانه رفت تا ببینه مادرش برای آخرین بار چه غذایی براش پخته. درست به موقع به آشپزخانه رفته بود چون ظرف غذا کنار اجاق آماده بود. رو کرد به مادرش و گفت: خب مادر، چه غذایی داری که به ما بدی؟ مادر جواب داد: خودت برو ببین. بند انگشتی به طرف اجاق رفت. ولی همین که گردنشو دراز کرد به طرف ظرف بره دود اجاق اونو کشید و از لوله بخاری به بیرون پرد کرد نیروی بخار مدت اونو در آسمون معلق نگه داشت ولی بالاخره به زمین فرود اومد و همونطور که دلش میخواست خودشو در این دنیای پهناور تنها دید پدرش حرفه خیاطی رو بهش آموخته بود اونم را افتاد و استاد خیاطی پیدا کرد و نزد اون مشغول کار شد ولی از غذای اونجا راضی نبود روز پیش زن ارباب رفت و گفت خانم ارباب اگه غذای بهتر از این به من ندی فردا صبح زود اینجا رو ترک میکنم و با یه تیکه گشت روی در خونه شما می‌نویسم سیب زمینی هر قدر دلت میخواد، ولی از گوشت خبری نیست خدا حافظ ای پادشاه سرزمین سیبزمینی ها زن ارباب با خشونت فریاد زد ای ملخک حالا زبون درازی رو بهت یاد میدم بعد دسته جارو رو برداشت و دنبالش دوید ولی بند انگشتی از بین انگشتونه های زن که روی میز بود دوید و در همین هین برای او شکلکم در میابر زن ارباب یکی از انگشتونه ها رو برداشت که شاید بتونه اونو به چنگ بیاره ولی بند پرید و خودش رو بین جارو پنهان کرد. زن هم دست برد و بین جارو و دنبال بند گشت. ولی پسرک روی میز پرید و با صدای بلند گفت <تصفيق> من اینجام. خانوم ارباب دستش رو تون به طرفش برد تا بند و توی مشتش بگیره. اما پسرک داخل کشوی میز خزید. زن اربابم فرصت خوبی پیدا کرد و چنگ زد و اونو برداشت و از خونه بیرون انداخت. خیات کوچیک ما به سیر و سفر خودش ادامه داد تا به جنگل بزرگی رسید و با سر دسته دزدانی روبرو شد که میخواستن گنجای پادشاهو بدزدن. رئیس دزدا همین که چشمش به آدم کوچولو افتاد با خودش فکر کرد آدمی به کوچکی اون مثل یه شاکلیده اون به راحتی میتونه از سوراخ‌های کلید رد بشه بعد رئیس دوزا فریاد زد چطوری آقا قوله بیا اینجا ببینم همراه ما میای تا بریم و از گنج خانه پادشاه دزدی کنیم تو به میتونی وارد اتاق گنج بشی و طلا و جواهرات و برداری و به ما بدی بند انگشتی لحظه فکر کرد و بعد گفت بله حاضرم با شما بیام. وقتی به نزدیک در رسیدند متوجه شدند که قفل نه سوراخی داره و نه شکافی. وقتی خوب همه جا رو وارسی کردن در کنار قفل سوراخ کوچیکی دیدند که فقط بندنگشتی میتونست ازش رد بشه. وقتی که بندنگشتی جلوی اون حفره ایستاد یکی از نگهبانان متوجه اون شد و به نگهبان دیگه گفت. اون انکبوت زشت و نگاه کن، دلم میخواد اون رو زیر پاهام له کنم. نگهبان دومی گفت چیکارش داری آزار این حیوان که به تو نرسیده؟ بند انگشتی این حرف رو شنید و به چابکی از بین درز وارد گنجخانه شد. پنجره ای رو که دوزده زیر اون منتظر بودن باز کرد و سکه های گنج خونه رو یکی پس از دیگری برای اونا انداخت. وقتی هنوز مشغول این کار بود صدای پادشاه رو شنید که برای بازدید اومده بود. اون خیلی زود خودشو پنهون کرد. پادشاه فوری متوجه سرقت شد. ولی سردر نمی آورد که وقتی همه چفت و بستا قرص و محکم بود و نگهبانا هم مراقب بودند چطور چنین اتفاقی افتاده. پادشاه از گنجخانه بیرون اومد و به نگهبانا گفت خیلی مراقب باشین. یه نفر در کمین گنجاز وقتی پادشاه رفت و بندنگشتی کارش دوباره شروع کرد نگهبانا ها صدای جیرینگ جیرینگ سکه ها رو شنیدند و با عجله وارد خزانه شدند تا دو رو دستگیر کنند بندنگشتی سری سریع به گوشه خزید و با یکی از سکه ها روی خودش رو پوشوند اون وقت حوض کرد سر به سر نگهبانا بذاره و با صدای بلند گفت من اینجا وقتی نگهبان به گوشهی که این صدا شنیده میشد هجوم بردند، بردن اون به گوشه دیگه پرید و پنهون شد و از اونجا فریاد زد "هه، من اینجام نگهبان ها هم به اون طرف حمله بردن بندانگشتی اونقدر سر به سر نگهبان گذاشت و اونها را از این گوشه خزانه به اون گوشه خزانه کشوند که بالاخره اونا خسته شدن و از اونجا بیرون رفتن بعد از رفتن نگهبان بندانگشتی دست به کار شد و موجودی خزانه را از پنجره به طرف دوزا پرتاب کرد. دستاخرام از پنجره به بیرون پرید و روی دست اونا افتاد. گروه دزدا خیلی خوشحال شدن و سر حال بودن. یکی از اونا گفت: تو مثل یه قهرمان قوی و پردل و جرعتی حاضری تحت نظر رئیسمون با ما کار کنی؟ بندانگشتی کمی فکر کرد و گفت: دلش میخواد دنیا رو بگرده و بیشتر سیر و سفر کنه. بعد دوستا اموال مسروقه رو بین خودشون تقسیم کردن. به بند یه سکه بیشتر نرسید چون او بیشتر از اینو نمیتونست با خودش ببره. بند شمشیرش رو به کمر بست. با دوستا خدافزی کرد و راه افتاد. بندانگشتی مدتی نزد چند نفر کار کرد. ولی انگار ریخت و قیافش چنگی به دلشون نزد و عذر اونو خواستن. دست رفت و... توی یه مسافرخونه پادو شد. زنانی که تو مسافرخونه کار میکردن از بندنگشتی دلخور بودن. چون اون بدون اینکه دیده بشه از کارهای پنهونی اونها سر در می آورد و به صاحب مسافرخونه گزارش میداد. اونها با خودشون گفتن صبر کن بالاخره یه روز سر تو زیر آب میکنیم و بین خودشون قرار گذاشتن هر طور شده اونو از سر راه بردارن. یکی از روزها که آشپز رفته بود از باغچه کلم بچینه دید که آدم کوچولو بین علف‌ها ورج وورجه میکنه. از های اون دورو بر کند و اونها رو جلوی گاوها ریخت یکی از گاوها آدم کوچولو رو بلعید جاش خیلی تاریک بود ولی آدم کوچولو شانس آورده بود که دندونای گاف موقع جویدن بهش صدمه نزده بود او که از جا وضعیت خودش خیلی ناراضی بود، از ناراحتی با تمام نیرو فریاد زد: "منو نجات بدین!" چوپان از شنیدن این صدا حیرت کرد. نزد ارباب رفت و جریانو گفت: "اربابم این صدا رو به وضوح شنید که می گفت. منو نجات بدین، منو نجات بدین!" ارباب پرسید: تو کجایی؟ آدم کوچولو جواب داد: در ظلمات ارباب که سر در نمی آورد گفت گاف جادو شده فوری دستور داد گاو گافو بکشن و خودش به سرعت از اونجا دور شد صبح روز بعد گافو کشتند و خوشبختانه موقع زب به بند انگشتی صدمه نرسید ولی اون در قسمتی از بدن گاو جا گرفته بود که اغلب برای درست کردن سوسیس ازش استفاده می کنند. وقتی قصاب کارد و فرو بارتا گوشت و تیکه تیکه کنه، بند جیغ و فریاد را انداخت. اینقدر محکم نزن! من اینجام! به خاطر صدای زربه های کارد، صدای بند به گوش قصاب نرسید. جان بند در خطر افتاده بود، ولی این خطر باعث شد که اون حسابی فکرشو به کار بندازه. اون بین ضربه ها این طرف و اون طرف میپرید و دست آخر با لایه ای از پوست از اونجا کنده شد. با وجود همه این تقلیه ها کاملا نجات پیدا نکرده بود و زیر پوست داخل سوسیس مونده بود. اون به اجبار مدتی طولانی در بخاری آویزون موند تا سوسیس دودی بشه. تا رسیدن زمستون اون همچنان در سوسیس باقی موند. سرانجام اون روز فرا رسید که برای عده از مهمونای مسافرخونه سوسیس درست کنند. وقتی ارباب عرباب اونا رو تقسیم می کرد، اون پنهانی از زیر کارت در رفت. اگه به اندازه یک موهم خطا می کرد، گردنش بریده می وقتی گوشه ای از پوست سوسیس پاره شد، بیرون پرید و بار دیگه هوای تازه رو استنشاق کرد. اینجا که باهاش چنین رفتاری کرده بودند دیگه جای موندن نبود. برای همین تصمیم گرفت به سفرش ادامه بده و به طرف خونه و خانواده‌اش خونه برگرده. اون در حالی که سکهشو به پدرش نشون میداد گفت: من یک سکه طلای زیبا برا تو وردم. البته من فقط میتونستم همینقدر با خودم حمل کنم. پدرش گفت: اگه قراره به سفرهای دور و دراز بری و با این قدر طلا برگردی، همون بهتر که تو خونه ما بمونی. کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی می مهران دوستی تی m e r d نشانی وبلاگ ما m e مهران <موسیقی> کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستستانی